ای سر ناز حست که خوش میرو به ناز و شاب را به ناز تو هر لحظه ست نیاز. فرخنده باد طعت خوبت که در ازل ببریدند بر قدثربت قای ناز آن را که بوی انبر زفه تو آرزوست چون اوود گو بر آتش سودا سو و سز، پروانه راز شم بود سوز دل ولی بیشم اعارض تو دلم را بود گداست صوفی که بیتو تو توبه زمی کرده بود دوش بشکست اه چون در میخانه دید باز صوفی که بیتو تو توبه زمی کرده بود دوش بشکست اه چون در میخانه دید باز از طعنه رقیب نگردد ایار من چون زر اگر برند مرا در دهان گاز. از طعنه رقیب نگردد ایار من چون زر اگر برند مرا در دهان گاز. دل که از تواف کعبه کویت وقوف یافت از شوق آن حرم ندارد سر حجاست به خون دیده چه حاجت وزود. چون نیست بی تاغ ابروی تو نماز مرا جواز چون باده باز بر سر خم رفت کف زنان حافظ که دوش از لب ساقیش شنید را